الحمد لله رب العالمين الله على سيدنا رسول الله لا عهد خيرنا قهرنا مأثم ولا نعبد أكراما أجمعين اللهم صلنا على النبي رحمنا برحمةك ورحمة رحمي در اینجا مرموم استاد فرمودن ما یه مقضا وارد بحث اساس و سفه شدیم و به همین مناسبت هم وارد بحث یک تحریق کلی راجع به سیر و اقراریه و چگونه این سیر رو تعریف و تفسیر و تحلیل و تبین و استضحاب روید بیگه البته این محال رو می که ما از تقریبا الان در سطح علمی یک امر واضح یه را که در کلمات اصحاب ما زیاد آمده سر و سریع کدستیر و قغلایی به عنوان یک امر مجمل و مبهم و تعبدی و رازدار و امزاد تلقیب یک توضیحاتی رو دیروز عرض کردیم و اینا به طور کلی این محتب روی ساده میتونیم که قغلا چیزی دیگر تعبد ندارن این نقطه باشه که ما منتفض نشیم چون مراد از قغلا از قغلا مردم عادی در زندگی اجتماعی شده و نمیشه که اغلای چیز خاصی داشته باشن راز و دار باشه ما نفهمیم و و گوش بسته از اون متابعت میکنم چیزی به ذهن میاد نمیاد مثال بارزی رو دیروز عرض کرده مثل حجر خبر سقه که از دو استادتان اصلای چهار احتمال در مثل حجر خبر که آیونی که تمسک به سیره کنه یک همین که الان عرض کردم بگه این سیره یک عمر مجمدیست عمر مبهمیست یک عمریست غیروازه و ما نقطه شن نمیدونیم تعبط داریم تعبود برخورد ما یک برخورد انفعادیست و این در پیش اغلا هست و نقطه شن نمیدونیم خب این خیلی بعیدیه یعنی اگه مصولت اولیدی که وقتی مناقشه بکنیم خیلی امر عمر غیرمتعارفیست مخصوصا چون مراقش از هست جوامع متعارف بشریست نه خصوص مثل ده نفر دیس نفر همسال شیخ رئیس نشیستن و یک مطلق رو تنویل کرد احتمال دوم دو این بود که مراد از سیره این اینجور بگیم بگیم نه نکته داره نکته همون ویساقته همون در خودشه یک نکته درونی داره مثلا در باقی خودجیت قرد که فرس با خودجیت مثل مرمون شیخ اوفیسایی که برای شیخ آمدن مثل ما آزیان مثل مرمون ناینی مثل اینا سر حجییت قطع و همون کاشفیت قطع می دونن سرشون می دونن ولی فیرما بعدن هر فیرما دنبال حجییت هستن دنبال کشم سر بگاه که مثلا ناینی وقتی می‌خواد خبر واحد رو بگه حجیت بگه کشف ناقصش رو تطیم می کرد چرا؟ چون ایشان مقتقده نکسی حجیت کشف مثلا حجیت منشه ششف و مثالش هم خیلی واضحه شما اگر مقابلتون بیدین چیزی هست یعنی داریم که این محاره خود قرار رو میکنی اما یقین یک چیزی مثل محاره هست اما میدونی یقین داریم دست میزنیم این حجیت ولی ازا طبق این تفسیر در حجیت بیشتر دنبال عمل هستن این که مرحوم شیخ در بس لاوید فی وجوب العمل علی صبغ القصد ایشون حجیت رو در حقیقت همین عمل دیده و اون نکته اصلیش تفکر اصلیش این بوده که حجیت رو تا مدار کشف می‌ذاره و اگر شاره هم بخواد یک چیزی رو مثلا قول تغییر رو حجه قرار بذه اونو کاشفتان میکنه می‌کنه خبر واحد رو حجه قرار بذه اونو کاشف می‌کنه پس این یک تفکره اصلا خودش این یک تفکریه این یه تفکر پیوسته به همه نه اینکه حالا چون در مباحث اصولی و قانونی سعی بکنید که افکارتون منسجم بشه هم زیربناهاش بشه هم یه نوع انسجام و ارتباط بین مطالب پیدا بشه یعنی یک مکتب منسجم یک مکتب به هم پیوسته رو بتونی ارائه بدی اینها معتقدن که ما وقتی که کشف شد برای ما کشف تام شد دیگه منتظر نمیمونیم ولذا حجیت رو دار مدار همون کشف میگیره و به تعبیر مغو این تعبیر آسیایی داره من لازم دیگه را حجیت فرض تنجیزی میدونن نه تعلیقی یعنی اگر کشف آمد کاشف به تمام دیگه تمام شد حجت آمد منتظر نمیشن اشاره نغی بکنه یا نکنه تعلیق بر نغ باشه ایشون تعبیرشون میشه اینه از تعبیرات خاص آسیاض که حجیت پیش امر تنجیزیه نه تعلیقی مراد در تنجیزی یعنی خود کش کافیه تمام شد تا کش آمد حجیت دارمزار رو بونه. اون از خبر سفه اینجا هم همین مبنا بگیم حجیت دارمزار وساقته اقلال اینجور میپهمن تا گفتن این آقا سفه و همین وساقت اکتفاق میکنن و خبر رو حجت موزن ما ازش تربیری دیگری کرد این میرسه تنجیز و تعلیم تعلیق آزی گفتیم یک امر درونی یا امر برونی یعنی منشأ و یک نکته است که در خبر سفر خود خبر سفر مثل ذاتیش یا ذاتش یا نه به خاطر یک عمر برونیه این مثل منوهای یا باز قائل به اول باشن که امر به اصطلاح مبهمی باشه که نمیدونیم یا درونگرا باشن یعنی خود به سفر این هم مقنی درون از سریم چون ما به طور کلی اعتقاد داریم که اغلا از امور ما به هم پیروی نمی کنم از ایک امور واضح و روشن یه چیزی ایست که یک علم ایقوفی باشه یک رازی باشه رمزی باشه مثلا بگن همین وساقت که آمد یه تمام شد نه این باید خود این به تنهایی کافی نیست باید نقطه دیگری باشه. احتمال ثبت این بود که وساقت و عمل می چون وسوق میاره حس دنبال وصوغ هم در حقیقت اما از وساقت وسوغ پیدا میشه اما اونی که دنبالشن در واقع وسوغه نه وساقت راوی که از کنیم احتمالا مراد مرموهای نایین نوتیسه که از این مسلکه هم خود جیت خبر منصور اصدور نظرشون به این باشه ما به دنبال وساقت نیستیم وساقت ارزش داده اما تا جایی که وسوغ بیاره اما اگر وساقت وسوغ نیورد مثلا خبری صحیح وساقت راوی داره اما عمل نشده رسوخ نگه برد اونجا دیگه حجیه نمیاد. این هم یک مسلک دیگری مسلک چهارم هم این شد که یک امر برونی رو ما نگاه می کنیم به درونش کار نداریم و اون امر بیرونی اختلال نظام یا عصره حرج در این اگر ما به خبر سقه عمل نکنیم خود زندگیم به هم می کنیم مثلا بیا تو یا دکان نااننوایی بسته, بسته از اون نچون خبر حجت حجددی خود اون برین میگاهیم یه نانوواایی بسته از بقبالی بازهیه برین مگاه زندگی به هم میکنه اگر ما روی خبر صه اعتماد نکنیم یا همین شبیه ایندلی هم اخباری یعنی یع اهل سنت و ورددن مهم داریم کدومول خودوم که پیغمبر اکرم احکام و توسط مبلین میرسونن به مناس و دور دست اگر خبر سق حجدشاده همه مردم ها تمام اساف رو از بهی همبر سوال می اصلاحنش میره اصلاحن نظامیه این هم یک مبنای این میشه مبنای برونی ارز کردیم به ذهن ما صحیح در مقابله اینه که به وساقت ما به ماهی وساقت تاثیر نداره وساقت به ما این که توفید الوسوق چرا اما وسوق هم به ماهی وسوق نیست این نکته اینه چون مرحوم ناهیه هم مثل مرحوم شیخ انساری مثل همه آزی مثل همه استاد این رو به نفسه حجت میدونن به اضافه آلی محجیت ذاتی هستن این توضیحات بودن ایک من اعتصال میدونم خوب رو دقیقی رو چون اینا وصافت رو به تنهایی کافی میدونن همینطور که ها نرس کردن رو تنجیبی میدونن حالت تعلیقی نداره حالت انتظاری نداره و ما این کلمات آقایان رو بر مهموشه شیبی توزیع داده نشده بود اگر یه کلمات کلماتی مان مواد ساده خوییم توزیعشون، چون توزیعات خیلی ارزش داری، یه مهمان تکرار میشه، باز همین هکردمیشه، اما همیشه داره سر نخست هم می‌دونی. از که دی، آنیان به هستی که ما در ذاتیه. ما اونجا رو از که مرازشون از همون به اسلام و شامل این به عرفی، ظهور یه که ظاهر باشه و واضح باشه وضوع داشته باشه پر خوربنه یکی ای. هم و اتنیان. در مبحث حجیق قرد و ذاتی که مرحض علم و قرد سوار برده قرد هم اضافه کردیم که در معیار مثل یکی و و بیشتر جهد سکون نفس و آرام آرامش نفس به برده میشه یکی هم زحوظ و وضوح که اینو اورفی بهش میشه این صفات رو ما گفتیم یک نقطه هستند حجیت اینها یک نقطه هست اونا حجیت و گذرد رو خود همین صفات چرا؟ چون این صفات درش وضوح هست و وشمی هست من میبینم اینها میخورن میبینم چرا برمیخورن میبینم این فرسون برمیخورن مثلا عمل كثیفیه نه نه نه عمل تمیزی قدووش تمیزی نمی‌کنه و همون میگن که عمل برای وضو پیدا کرد طبق همون وضو هم عمل می‌کنه طبق همون غسل هم عمل میکنه. در مقابل میگن نه این صفات نحسانی انسان که جنبه به اضافه به خارج داره اینها درست موضوع حجیتش رو اوغلا میشه اما نه به ماهیه دیه چون حجیت یک امریسی در جامعه پیدا میشه یک پدیده اجتماعی در زندگی فردی جایی برای حجیت نیست این قدیبه اجتماعی که پیدا میشه در جامعه به خاطر اینکه که سفات نفسانی تخلف دارن نمیتونه بره این حجیت رو بغره و سفات نفسانی با وجود تخلفاتی که میشه من قرد پیدا می که اصلا مولا اینطور فهمیده باعث بر رو اشتباه کردن سخات نفسانی کافی نیستن رو ذات اضافه ای به خارج هستن کافی نیستن که موضوع حجیت بشه توضیحات رو در محلش عرض کردیم زواهر ادله این است که اون موضوعات به وجود واقعیشون موضوعه شراب واقعی حرامه من علم به کنم شراب این تاثیر نداره اگر بگیم حجیت را، این باید این کلاقی بشیم که موضوعات عوض بشن در عین معروض و این انقلاب درست نیست ظاهرش نیست که موضوعات واقعه و صفات نفسانی ولو کاشفشتان باشه چون احتمال مخالفت هست احتمال هست مطابق با واقع نباشه از اون مردم واقعه رو می‌خواد این کافی نیست برای اینکه اون حجیت خطاب واقعه محقق بشه لکن اوغلا در زندگی روزمرهشون به این نتیجه رسیدن که اگر روی علم یا بعضی از موارد که وضوح داره اعتماد نکنند زندگی به هم می‌خوره قبول حجیت آمده زیربناش رو شاهروشنگودن زیربناش وضوحه زیربناش تاریخیته زیربناش کاشفیته لکن تمام نیست و لذا از کردیم در بحث حجیت اونی که در امر قانونی اهمیت داره این توضیحش خیلی اجمال آنه عرض دام چون تفصیلا عرض کردیم ما در بحث حجیت در بحث قوانین اعتباط قانونی از دو مرحله اساسی داره یکی مرحله اتیان خارج که اسمش استانه الان عمل گذاشه یکی مرحله امبعاست باعثیت زاجریت این مرحله باعث از راجریه این اسمشو گذاشیم قرض ادنای از جنب وقتی به بچش نام نان بخرد قرض اینه که وادار بکنه به دنبال نان داره این قرض ادنا اما خریدن نان رو رسوجیم قرض افسا خوب دقت بکنه یک قرض ادنا یک قرض افسا قرض ادنا تخلف نداره هر جا عمر کرد قرازه ازنا مترتفت میشه دو مجرد این که گفت برو نان بخرین قرازه ازنا میاد دعویت هست این تخلیف نداره. اما قرازه اقصا تخلیف داره ممکن است نان بخره ممکن نان نخره دوشن شد آیاین یعنی این که آمدن رفتن رو عمل در حیمت رستن رو قرازه اقصا این توضیح در این ها در کلمات ها نیامده این تحریف دنده هست یک مقدارش آوازی ها داره بقیه،, بقیه نداره اینایی که آمدن توی مقدار هم شد به جوریگش هم مرحومه های آشانسن اسمه ها میداره در حاشه مبارکش این پرتیبشون هم میگه اون جمعجوره اینا آمدن اینا رفتن رو قراز اخصا یعنی آمدن رفتن رو عمل این درست نیست اونی که در اعتبارات قانونی بیشتر محل کلامه اون قرز ادناس مرحله تنجیز اون قرز ادناس یعنی ایجاد باعثیه به تعبیر قرآن اونده بیه و من بلع او اوهی حال قرآن این قرآن رو برای که من انذار بدن شما رو هر هرکی که این قرآن بهش میرسه ماه دیوزه مثلا قرن پونزه همه اجزی هستی قرز ادنا اونی که حقیقتاً انبیابعث شدن و جعر میشه رو اینه رو انذاره ولیون زرو قومه هم اداره جاو الیه هم هم یهزرون این یهزرون قرض احساس گفت لعله هم این گاهی مترسته میشه گاهی نمیشه اما ولیون زرو قومه هم انذار قرض از ناس این هم با تحدیرات قرآنی حالا به جای که تحدیرات اصولی پس یک مرحله باعثیت و زاجریت داریم یک مرحله اتصال به احیان اونجا داریم با بشن شدید مثلا ما معتقدیم اونی که میعار حجیت همون قرارز ادناس اون حساب بکنه. یعنی اون باعثیت و زاجریت به خلاق مرحوم شیخ لاره نفی وجوب العمل علا طبقه این وجوب العمل این قرارز احساس از کم تحلیل نکرده منوم های خوی تحلیل ندارن این تحلیل رو ما اونجا ارائه دادیم خیلی آن خلاصش شده هم مجمله قبول دارم یکی تفاصیش در محل خودش عرض که که پس بنابراین قبضه قدر بفهمید نکته اینه که ما در باب حجیت دنبال این مرحله هستیم مرحله تنجیز رو این میدونیم مرحله تنجیز اون صورتی پیش مکلف پیدا بشه که باعثیت و زاجریت ده. اون صورت جدیم ما اینجا اینجور خلاصش به ذهن ما اینجور رسیده این صورت ذهنی دو مرحله داره یکی کبرا، یکی صغرا یکی اینکه که حرام است یکی اینکه این مایه خارجی خبر هست. یکی کبراه اگر این دوتا درست شد تنجیدیه استلاحاً بشین کنم وصول ایو المکلل صغرا و کبرا خلاصه بحث رو عرض کنیم. بحث عرض کردیم یک سیاق و هست در این سیاق و اغلائی. بنابراین اینه که قانون توی سغرا تصرف نکنه چون خیلی پراکنده فوق العاده پراکنده بیاد به شما بگه شما از خوشا گفتی این مایه خمره از خوشا گفتی این مایه آبه کی به شما گفت قانون آزتاً نمیاد توی مراحل سغرا دخالت خالت بکنه اما تو مراحل کورا چرا؟ مثلا قانون به شما میگه شما قانون رو بهش عمل بکنی که در روزنامه مجلس آنو بکنه قانونی که در قرآن روزنامه ها آمده قانونی که از رسانه ملی پخش میشه میتونه خیلی بزنه این خیلی زدن کبرا اینی که ها هست اینه که مرگونه آزی فرمودن تنجیزی تنجیزیست خیلی تعلیمی نیست تنجیزی نیست ممکن است پس اختلاف ما با آیان کجا شد آیان فرقی بی بین سغرا و کبران نگذاشته این خلاصه هرم ما میگیم اون صورت ذهنی نسبت به صغرا از هر راهی که برای شما پیدا شد اون دائره مکلفه قانون گذار تو اونجا دخالت می کنه اونا میگن صورت کبرا هم از هر راهی که برای مکلطه پیدا شد این اختلاف اساسی ما با آقای هم رو شما از هر راهی که پیدا کردید تشکیف موضوع هم از هر راهی که شد ما حرف اون اینه که در مرحله موضوع اینا هم عقلی نیستن سیره اقرار بر اینه توی مرحله موضوع قانون ممکن است یک اصول کلی برای تشخیص وزن اما تو سقراب وارد نمیشه قانون اما توی کبرا چرا چرا چون میدونه ممکن است مکلف به یک سور ذهنه اعتماد بکنه که اینها درست نیست خوب درست بکنه لذا میاد محدود میکنه میگه اون قانون رو عمل بکنید این بحثی هم که در حقیقت اخباری ها مفرحت اصلش این بود هدم حجیت قطع حاصل از غیر کتاب و سنت. ما این رو توضیح دادیم که اخباری ها مراد جدیشونه که ما را در کلمات یا شدیم و گفتیم انصافا هم حق با این ها. یعنی قطعی که حاصل دیم. روشن شد نسبت به کبریات قابل رده الان در کتب و اصول ما معروف شده که قابل رد نیست. مثل شیخ قبل شیخ هم هست. کتاب های قبلشان چون جاش بحثش اینجا نیست. یا بینه میارن. کتب و اصولی ما که قبل شیخه میگن نه. ولی زبا با یه مشکل برخورد کردن. اگر ما از قیاس قیل پیدا کردیم. میگن نه، این که ممکن میزن دردیم. روی ستا و راست ما و درد اخبار خیلی راحتیش مشکل نداره چاره محضرت شما شما از این را, این را این را رفتیم به حقیق این حجیق نداره. این کافی نیست این برای تنجیز کافی نیست برای انذار کافی نیست آه. کاری بهیر نداریم لذا از ما در مرحله تنجیز نسبت به کوبریا خوب دقیق کنید نسبت به کبریات قایدتا قانون میتونه تقسیم گیری بکنه بله اگر تصمیم گیری نکرد بانم اون علم اکتباه بوده برده این نکریفتی شد چون علم کاشه به تامنه. اگر آیا مثل عبیل شیخ و دیگران هر حرمشون خلاصش اینه کوریات مثل صوریات قانون کاری نداره. شما از هر رای علم و این کافیه این دا اون تحقیق رو این که مقدرش همه بیه این این خیلی ما مفصل شد چند روز مفسد صحبت کردیم من مخوام زده یه چند دقیقه خلاصه یه تحقیق مدر رو شد من رو ما عرض کردیم هر در این مسئله با اخواری ولی و ایزا طبقه تصف ما مسئله حجیت تا به اون کاشفیت در همه دوری از یک همه بیرونی گرفته شده چرا؟ چون حجیت یک قدیده اجتماعی وقتی یک اجتماعی شد منشأش هم جامعه است می اجتماع میشه لزوم اخفی در باب حجیت واس برگرد به اختلال نظام که جامعه را از بین میبره یعنی اگر بنا یک چیزی رو شاره و مخنم به عنوان حجت قرار نده بيره دنبال واس جامعه را میکنه مثل جامعه ها اون نقطه قابل جهره درونی نیست مجموعه آی آشانسی در این, این آنوی که اسم برده فقط مجموعه آشانسی حجیتو منشأش اختیار نظام میگه در جی که عقل عملی و حقوقم منشأ اختیار نظام میگه اون مطلب ایشون درست نیست اما مطلب حجیت ایشان درسته مجموع آی استانی هست از چه تحلیلی ای ایشون ارشد و این توضیحات ایشون نداره بقول نگاه دید. اما این تحلیلی که خودナン از راهی که خود ما رسیدیم پس برابری بحث حجیت یک نقطه درونی نیست یک نقطه گرونی نیست مراد ما از نقطه درونی نرسته رو اون صفات نفسانی شما که ذات ای به خارجه یعنی ما اصولا احس کردیم این گونه صفات نفسانی شما که ذات اضافه و مرآتیت از خارج داره اگر فقط مجرد مرآتیت باشه اصلا صلاحیت جهل حجیت نداره چون نظر سرکن به خارج ها. این توضیحات هم مفصل داریم، نکات لطیفیز به نظر من روش فکر بکنی خیلی خوبه بله صفات نفسانیی که مراتیت به خارج داره اگر اضافه بر مراتیت نکته دیگه داشته باشه بلاحظه اون جل و جل معبوله. ترتیب آثار بر اون معبوله مثل خوف خوف ذات اضافهی به خارج هست اما در این حال یک نوع حالت نفسانی دیگه برای شما ایجاد میکنه مثلا میگن طریق مخوف طریق مخوف یعنی طریقی شما توش احتمال از این حیوانات درنده باشه این زافه اضافه به خارجه یعنی شما در این حیوان درنده میدونی اما اضافه بر رویت و احتمال خود نفس شما هم به نوع حالات غلق میدانی کنن حالات هر اشت میکنه خود نفس صرف ارائه خارج نیست ارائه خارج با یک نوم زیغ نفسه این میشه روش ترتیب آثار میش به نخاز همون زیر نفس اما جایی که مرآزیت صرف داره هیچی نداره فقط خارج نگاه میکنه که علم باشه ظهور و باشه این هیچی نداره فقط خارج میبینه این به نظر ما نمیشه موضوع احکام بشه اصلا این این حالت به خلافه مثل حالت خوف و این حالت هم برای حجیت خوف و حجیت کافی نیست این باید یک نقطه برونی بهش اضافه بشه تا حجیت درست بکنه به نقطه درونی نمیتونه چون نقطه درونیش همون کاشفیتی و چون صفت نفسیست و ممکن از تخلقه از خارج یه مخصوصا در قوانین چون در قوانین افراد قشر مختلف ممکن یکیسی از را رمد و جفت و استولا فکر من به حکم ایلایی رسن یکی از را طالبینی برسته یکی از را فقط مجرد کتاب الله یکی از را فقط کتاب و اقوال صحابه چون قانون میدونه که افراد بشر مختلف در رسیدن به قانون و این حالت نفسانی دائما مطابق واقع نیست خوب دقیق بکنی؟ و این حالت نفسانی هم چیزی نیست چون طریق صرفه مثل خوفی. نیست چیزی که طریق صرفه ایچی نیست زاد در اینجا یا واقع هست یا نیست اما در حالت خوف اگر واقع هم نباشه حیوان نباشه حالت زیغ نفس شما هست این راه رو که با نراحتی هی با استراب میری این حالت استراب هست اونجا میشه جعل آثار پس حالات نفسانی که ذاتو ارائه به خارجی ذات اضافه از خارجی به میده این اینم دو جوره یکی این که طریق صرفه یکی این که اضافه بر از نکته دیگری هم داره هر دو یک کلمه اونجایی که طریق صرفه نمیشه چیزی رو قرار بده اون اشکال دو که اگر حکم ما یعنی به علم شد مستندون دوران هم همین دیگه اون نکته اون بحثه اون دو رو برو هر طور گفته بنابراین اونجا هم گفتید اگر علم به حکم موضوع و حاکم بشه، علم سر صرف مشو نمیشه. چون علم هیچ نیست و هیچ چیزی چون شما موضوع بله، اگر گفت علم از کتاب، علم از جنس، علم این مقیّد شد برای اگر شما از قول امام صادق علم ام پیدا کردید، اون حکم برای این معبود ممکنه. از قول مشایخ نذرید. این ممکنه. و اصولا این نکته ای که من چند بار عرض کردم چون لطیفه مرحوم شیخ اول رسالی اینجور رو که اعلم ان مکلت دلکت تلاخت میشه مرحوم دیگه برای از کردیم که بعض هم بعضی جلوی دیگه, دیگه گفتم مثلا در کلمات و استادیشون مرحوم صاحب مفاتی مرحوم سید محمد مجاهد ایشون هم در بحث به اصطلاح بجرگ مقدمه ای داره اونجا داره اعلام انن مشهد اضافه هست عن امانی الله الفرس املاح مرموم شهر عبارت و استان بخیر بر عوض فرموده به جای مشهد نوشتن مکلل این منشأ تمام عباسی شد کردن صد و خورده ایسا تو وضای ما هست آمدن این تصور کردن علم به احکام مثل این موضوعاته هر مکلل بینطوره برشت یا علم پیدا میکنه یا آزان این نیست اصلا این اصل این عبارت شیخ واضح نیست مشهر صدی عبارت شیخ اصل این مطلب روشن نیست چنان ان ان محاسبته مرحوم نایینی داره, داره. مرحوم نایینی اصرار داره که ما از مکلف مشغله مرحوم نایینی فهمیدن که بابا این ابا طه شیخ در کتاب اوستاشش مشغله بوده خود ایشان فهمیدن که مراد مشغله آزیان اصرارن که مراد هر مردی مشغله مخلله بحثو که همونجا اشاره وارد به صحبت شد روزی نظری از بحث شد هر باهمینی حجیت خبر ثقه ما این رو تفسیر میکنه خلاصش اوغلا به خبر ثقه عمل میکنن این عملشون عمل مبهم نیست این نکته داره این نکتهش هم برای ما مجهول نیست ما میفهمیم چون سیره اوقدائی ما هم در داره این سیره هستی یک طرف این سیره هستی. و نکته عملش هم حسود و خود وسوغ هم به نظر ما کافی نیست برای هویت نکته هویت هم اختیار نظامه نقطه او جیت هم لزوم اخترار نظامه یعنی به شرق ماها میفهمیم اگر بنابش در هر مطلبی به واقع درسته زندگی به هم میخوره. اون هست یک چیزی که تحریمان یه همه قبول دارند از اون یه حوشندتر پیدا که علم شد که اگر برای آمر و معمول علم پیدا شد این برای معمول به خصوص مقام امتثاث این کافی باشه برای حجیت برای باعثیت برای زاجیت چون این واضح تر نیست روشن شد یک بنای عقلایی قدیمی قدیمیه قاضی یک التزام ننویشه بنا گوشه و نژاد عرض کردین این فرضش اینه که حجیتی رو که شیخ میگه چون مطلبه ثابته به اصطلاح لذا ایشون از من ای تداول کان، ده ای شخص کان، به ای طریق کان، پی ای موضوع کان، تمام اینا به اله اشاره نه ل ای شخص برای عامه ال بدروجی ارزش نداره. از طریق قیاس کلا بهشون موگیر کردن که علم قیاسی اشاره می‌کنه. لذا گفتن اشکار نداره ما میتونیم بگیم فقط میشه اشاره به تو علم می خوده، مناقشه در علمش بکنه. و الله اگر بگید من علم دارم شارعه نمیتونه جمعی شدید این هم به نظرمون می کنم که ایت مشکل هم دارم واقعی بوده شما قوانی دست خود صاحبه یعنی به عبارت دیگه یکی از شعون مغنن تنجیزه این به عبارت دیگه اینا بخواهی تنجیز و شعن مغنن در بیدارن در اختیار مکلف مکلفت قرار دارن یه لغتی دیگه ای هایا وصول شما به قرآنی شهر مکلت فقط از هر راهی از هر سببی جواب به نظر ما خیر همچنان که تقنی از شعون مغنمه تنجید و کدام وصول معتبره و کجا انزار معتبره اونم از شعون مغنمه اونم مغنم میگه اگر شما این صورت ذهنی از اینجا آمد از اینجا آمد قابل قبول؟ از اینها ها و این ها من قابل قبول نیست و به نظر من با مراجعه به ارتخاطات و قبول به نظر من مقلب من کاملا واضح و روشنه ولی دا این تصور خود جیهت قد هم یک امر مطلق نیست یک امر ثابت هم نیست یک امر نسبیه یک امر متغیره حتی ممکن است یک جامعه لاغل که شهر یک چهره با قول موزه آلمان شهر یه چهره اینقدر و سائل ارتباط جبی روشن باشه در همه مسئله برشون قصد پیدا بشه قصد دیگه به, به... نه قصد پیدا بشه واقع رو ببینن اینقدر کلیزون های مدار وسه و موبال و قضایان هست که واقع رو میتونن ببینن یه قصد نیگه من این پیدا کردن مثل معنی رو داره این پیدا کردن فلان مسئله آ این مطلب میزن قیمت این طور بوده این آقاین هستش این طوره این فصل میوهی که در بازار آوردن خصوصیت سال بودن نبودن میکروب داشتن نداشتن تمام قابل درک واقعی باشد و قطعا رو به حجت نیارن دیگه پس این نشون میده که مسئله حجیت دایر مدار اختلال نظامه نه دایر مدار یک عمر درونی این راجبه خبر سری رو شما رو می گیرم. اصل خیلی شاید این مطالب امروز در دنیای اثر فلسفین غرب یا دنیای علم و مسلمات بشر تا تو حوزه ما مطلب جوریه گفته شده ما که وقتی شما رو می گیریم برای اینکه برگردیم به مسلمات اولیه قانونی و اما نسبت به مسئله که الان ما داریم اساس صحیفه الیغه، بخاطر این همینطور بگیم یک این ما میدونیم اوغلا امر هم میکنن بر اعمال صحیح و نکته رو نمیدونیم. دو نقطه شگاه صدور فعل از شخصه هیچ نقطه دیگه نداره یعنی اینا در بابه این که بخوام این عمل صحیحه میگن این بل از این آقا صادر شد این طلاق از این آقا صادر شد فقط به این نگاه میکنن این خودش اختیار کنه خرید باشه این همین اگر خدای این هم خیلی بریده التزام به این مطلب بریده نقطه سوم بگیم یک ارتقاد اوغلایی هست که سر هر عمل یک اراده جدی هست وقتی طلاق میده واقعا قردش انخصاله قردش ازاله و علقه زوجیته چون یک اراده جدی پشتش هست پس باید این سهیه یه میشه این زنی که گفت در وشتک نفسی و اون آقا گفت قبل تو پشت سرش یک اراده جدی چون اراده جدی هست باید نکاح صحیح باشه چون اگه نکاح زوجیت بگه میشه. اصول الهی زوجیت به چون مبنی بر اراده یعنی این عمل عمل غیر ارادی که نیست یک عمل ارادی است همین که عمل ارادی است و از شخص عاقل صادر شده و میخواد ترتیب اثر بده همین کافی است که بگیم این عمل صحیحه اون ای رو که ما تکرار عرض کردیم فراموش نکنید ان شاء چون ما نحنفی اصله اصلاف سهه اصوله در اصول ارز کردم شما همیشه داده های ذهنی نگاه بکنید. دو اونه موجود اونی که در ذهنتون داری دو،, دو چی میخواهی محبوب هم نگاه بکنید. اونی که شما در ذهنتون از زنی با مردی زن میگه زرشتو به نفسی اونم میگه قبل تو هرزم در مقابل ازد... مقام ازدواج هم. میخوان میخواهن علقه مشترک کشتی در زندگی مشتر هر انسان ها هستن ببینید این داده های شما نتیجه چی میخواییم گیری؟ که ابداع میکنه نفستون پس احس سریه این امدنکاه سریه در این تولد اصولی اصول ما که میگیم اصول اقلایی هم بین معنا یعنی شاره هم همین کاره میکنه اقلا هم همین کاره یعنی ریشه کار شرقی اقلایی یک داده‌ای هست مثلا قاعده ایه می‌بینیم آقای در این عبار پوشیده مدتی میره میان با این هوا ما ببینیم داده ما تصرف این شخصه چی می‌خوایم اثبات بکنیم مالکیه حدی این میشه قاعده میشه یک اماره مالکیت پس شما در باب اصول دائما دفت بکنی یک چیزی در ذهن شما مسلمه یک چیز دیگری رو میخوایی نفس او رو ابداع میکنی به طور کلی آده کلی و اصول یاد بگیری شما در اینجا تصرف به طرف رو میبینی چی میخوایی در مالکیت. مالکیه مالکیه لکیه میبینن رو اعتباطی اما تصرف رو میبینی ولذا اگر کسی آمد اینطور گفت بسنی یم یعنی مالکیت. تصرف یه مالکیه دیگه با اصافریت این دیگه اماره ملکیت نمیشه یه اگر کسی معنا کن گوه مقا می ملکیت یعنی کسی تصرف میکنه، یعنی ملکیه. مسئله تو چی جور میگیم شخص مالکه ملکیت یه هر کی تصرف کرد مالکه ما کار نداریم امره اعتباری نیست. اگر این شد دیگه شما اصافریت نداریم گریه قادر نیستون جلعافت نمی‌کنید چرا چون داده شما با اون مطلع شما یکیه داده شما تصرفه مطلع شما تصرفه خوب بس خاطر گفتید دقت کنید فنی رو خوب دقت بکنید پس شما باید یک داده‌هایی داشته باشین یک سوره ذهنی داشته باشید یک چیزا می‌خواید ابداع بکنید سوره ذهنی که دارید این آقا رفت نان پول داد نان خرید خرید و انجام شد این ذهنی هر دوم آقل و ملتفهت و اگر اعتبار نشه یعنی اگر بین نباشه ما آمل نباشه اصلا این توی نان تصرف کنم چون پول تصرف بکنه. مجموعه این حالی که با هم جمع میکنید ذهن شما این درست میکنه که این تصرف ایشان صحیحه دنبال این نیست این که در واقع درست بود درست نبود این شرایط بیر بلد بود بلد نبود این اسمش میشه اساس سه هفی فیلی خیلی این راه سوم، راه چهارون یکی نه درست این مطلب هست این لکن این به زای فقط به این مزار کافی نیست اون چی که منشب میشه که ما به تصرف رو او حکم بکنیم به ظاهر او حکم بکنیم به صحت معامله اون اختلال نظامه و الا اگر اختلال نظام پیش نمی پس ما در زندگی روزی یک بابا با همش مسئله‌ای روبرو میشید خب مینو فرض می کنیم صحیح بود نه؟ نظام لازمه، اسنادی لازمه. پس اینجا یک نکته خارجی دیگه هم به ذنیمه شده و اون لزوم اختلال و لزوم اسرهرج، اصل اسرهرج که سبب سر اختلال سنگین داره. لزوم اختلال نظام. شما با مجموعه اختلال نظام حکم به صحت می‌کنی؟ نه به مجرد دیدن صدور این عمل از به فته سوال آیا به مجرد دیدن حکم میکنید اگه شک کردین یا نه به لحاظ اختلال نظام حکم میکنید به ذهن من میاد چون یک امر اجتماعی است اون چیزی که به عنوان یک قریه ارتکازی دائما پویشه سرش مسئله اختلال نظام میونه من به ذهن ما میاد که اساس صحه اجمالا در نظام اوغلیایی نه مراد به حکم عقلی در یک نظام اقلائی در جامعه قابل قبولی شده البته دلیل دلیل لفظیست لذبی نیست لبیست به قرار متعقل اخص میشه که ان انشاءالله خواهر آنون و نقطه نهایی دیگه اینه که یک امر مطلق نیست نصفیست ثابت نیست متقیره ممکن است ما در یک جامعه هایی رزیجی که از آتا جادی نکنیم این دو تا از مفتر نفتی رسه با از سالات سهه چون اعتباره چون ابداره درجات داره درجه زدیفش اینه که حکم بکنیم این کار حرام نکرده این درجه زدیفش. درجه بالاش حکم بکنیم که این عمل صحیح است مطابق با واقع با حکم الله الواقعی درجه وسطش هم این است این حکم صحیح مطابقه با اعتباد و خودش این درجات داره اون که ما طبق قاعده هی hey, ما از درجه زریف بالا و لذا انصافا حکم قغلا به صحت معامله این کار کرد اما صحت واقعی این هم رومشنی. واقعی اندالله هم روشن نیست اما این که فقط گناه نکرده این میشه بیشش گناه نکردن و لذا ما خلاصه کردیم خلاصه چند جلسات قبلا گفتیم از سالات که ما تو روایات داریم همین درجه اش ایشون گناهی کرده اما در سیره اغلاوییه صحت ما بنا می‌ذریم به صحت معاملات و صحت تصرفاتی که شخص انجام بده صلی الله علی محمد اللہ. زاره هم شما خصوی هم من